و وقت احتجاج تبرسی چی میگه میگه از کوفه ایده اومدن مدینه خدمت امام مجتبی آقا معاویه پدر ما رو در آورد بیچاره شدیم حضرت فرق. این جمله رو دقت بکنید امام فرمودن چه بکنم خودتون ما رو اینجا خانه نشین کردید خودتون ما رو خانه نشین کردید من این استفاده میکنم از فراز دیگه که الان میخوام بخونم دوامند دوازده روز رو و استادم 20 نفر اومدید تازه بعد ابن عباس اومد دیگران اومدد داد زدن حجر ابن عدی اومد فریاد زد یه عده رو دور من جمع کردید ولی همین ویی که دور من جمع شده بودید با دست خودتون میخواستید منو تقدیمه به معاویه بکنید ما چه بکنیم با این مردم رشوه بدیم نه باج بدیم نه از دین خدا مایه بگذاریم نه ما اون معلمینی هستیم که میاییم سر کلاس اگر شاگردها رو مستعد دیدیم جان میدیم و بحث میکنیم اگر ندیدیم میریم تو خونههای خودمون میشینیم بخواید میایم امام زمانم هم برای همین قائبه و وقت اینجا حضرت میفرماده حق ما رو من کردن حق مادر ما رو کردن و اقسمو بالله اقسمو بالله حالا از کدم معاویی حرفو زده امام علیه السلام بلند شده که مردم گول نخورید من اتمام رو دارم میکنم به خدا قسم لو انن الناس با او عبی به خدا قسم اگر مردم بعد از پیغمبر با بابای من بیعت کرده بودن همون گونه که پیغمبر سفارش کرده بود آسمان باران رو مرتب براشون میریخت و ارز برکت و ارض زمین شو بهشون رو میکرد و ما تمعت و ما تمعت ها یا معاویه معاویه تو نمیتونیستی تمع کنی بر خلافت چی شد تو تمع کردی مردم دست به دست علی ندادن این مردم کیان اکثریت یه اقلیت حق که دور علیه یه اقلیت باطلی که معاویه است یه اکثریتی که آمن این عامه با علی بیعت نکردن خدا هم باران به موقع نمیدهد زمین هم برکت به موقع بهشون نمی... امام داره میگه و بدتر توی معاویه تمع میکنی فلم ما خرجت من معدنها تنازتها قریش بینها و تمعت فیحت طلقا و ابناع طلقا انت و اصحابو حالا این تیکره میگم میگه کار به جایی رسید طلقای بچه های طلقا. این امام حسن فرمودن حضرت زینب هم یه جا فرمودند یادتون هست؟ تو مجلس یزید فرمود امن العدل یبنب طلقا طلقا طلاق داده شده ها آزاد شده ها اشاره به این که پیغمبر وقتی مکه رو کرد خاندان ابو سفیان رو آزاد کرد یعنی شما همونی هستید که تا روز فتح مکه با پیغمبر می جنگیدید حالا کار جامعه اسلامی افده فرعنگ عامه به جایی رسیده طلقا و ابناع طلقا تمع خلافت دارند و خلیفه هم می شون.